از قنات قناتشمسآبات کتابها بیرون خرمک خرمکس سرمایه چگونه فولاد آبدیده شد دیالکتیک مادر مالکیت کار، سرمایه دختر رأیت تاریخ عمومی منطق فلسفه ملیحه کتاب‌ها را میگیرد قهقهه میزند و آنها را ورق ورق میکند صدای قهقههی ملیحه مثل وقتی است که سرمان را در چاه فرو میبردیم و می‌خندیدیم صدا تنین دارد احساس می‌کنم صدای صده قهقهی در آسمان پیچیده است برمیگردم تا به او بگویم آرام تر بخندد اما ملیحه نیست، مشروقهی است دهان بیدندانش مثل یک چاه سیاه و تاریک بی انتهاست. رو بر ناگهان از دهانه قنات جنازه گفن بید شده یختر بیرون می موهایش از کفن بیرون آمده و روی آب شده است و پاهایش از کفن بیرون زده است گوشت پاشنه پایش کنده شده و پاستخانش پیداست چیک میزنم چیک میزنم روحامی را محکم گرفتم روحامی مدام تکرار میکند گل خواب دیدی آرون باش گل من اینجام نگاه کن خواب دیدی دختر اولین چیزی که به ذهنم میرسد پرزبانم جاری میشد برقو روشن کن گلید برق را میزنند بدنم خیص علق است دستهایم میلرزند احساس میکنم تکیه از گوشت و پوست پاشنهی اختر به آنها چسبیده است دستهایم را میگیرد نترس حتما خواب دیدی آب میخوای نه جوی آب پر از کتاب و جنازهٔ اختر را میبینم روحامی دستهایم را ول میکنم از پارچ لیوانی آب می ریزد. دست پشت گردنم میاندازد سرم را ثابت نگه می دارد و لیوان آب را به لبهایم نزدیک می کند نمی خوام. یه کمی بخور. آبه نگاه کن. آب لیوان را تا نیمه میخورم میخوای می, می خوای برات آب قند درست کنم؟ نه. کنارم می نشیند. و سرم را در آغوش می گیرد. چه جیغی کشیدی. تاجی خانم که هیچی. احتمالا تا دو سه کوچه اون طرفترم مردم از خواب بیدار کردی. دستش را محکم می گیرم. هنوز باورم نمی خواب دیده باشم. میخوای بگی چی خواب دیدی؟ شاید گفتنش راحتت بکنه. اختر و خواب دیدم. سکوت می کند. منتظر از توضیح بیشتری بدم. با ملیه رفته بودیم سر قنات شمس آباد به نظرم رفته بودیم رخت بشوریم یه مرتبه از دعنی قنات کتاب بود که بیرون می اومد حتما کتاب سرمایه خرمگست تو از کجا می آنچه خانوم خانوما در خواب دیدن ما در بیداری دیدیم راست می نشینم و در چشمایش خیره می شم. همون روزایی که جسد اون دو تا جوونو اووردن، گزارش رسید که قنات همسابات شده چاپخونه کتابی که تولید میکنه اونم چه کتابایی خب شما چی کار کردی هیچ کار فرستادیم کتابا رو اووردن. این اولین بار نبود که از جاهای عجیب و غریب کتاب بیرون می اومد قبلا از توی منبع آب شهر تنور نونوایی سید عبالفزل و مقبره سید مرتزا کتاب های اینجوری بیرون اومده بود. شما هیچ پیجوی نکردین ببینین کی اونا رو ریخته تو قنات؟ مال مورد قنات شما رو نه. چرا؟ چون معلوم بود کتاب مال اون دوتا جوون بود. اونا که مرده بودن؟ خب مسئله همینه. اونا مرده بودن. لزومی نداشت کسی مورد تعقیب قرار بگیره. نه منظورم اینه که نمیخواستیم بفهمین کی اونا رو تو چاهای قنات ریخته. خب معلوم بود. خونواده ریخته بودن. اونام که به اندازه کافی مجازات شده بودن. سکوت میکند. احساس میکنم کم کم چهره ی چند ماه قبل دوباره در ذهنم شکل میگیرد. به صدافت میفتم آزارش بدم. اون کتابا رو من و مادرم در چاهای قنات شمساباد ریخدیم. لبخند میزند. فکر میکنم با لبخندش میگوید کمتر دروغ بگو دختر. حدود یک ماه قبل از کشته شدن بچه ها، یه شب عزیزالله بک کتابا رو اوورد و با کمک مادرم تو باخچه خونه ای ما پنهان کرد. اما بعد از مرگ بچه ها، من و مادرم اونا رو بردیم و در چندین نوبت توی چاهای قنات شمساباد ریختیم واقعا، واقعا، حالا چرا شما خودتون رو قاطی ما کردین قاطی بودی، مادرم امین این خانواده بود، البته، بدش کن به هر حال کار ما بود، با همان لبخند مسخره نگاه هم می کند نمی دستگیرم کنی؟ دیگه چه جوری دستگیرت کنم؟ الان ماه زندانی من هستی؟ دستایم را میگیرد و میبوزد حالا چرا جیغ کشیدی؟ کتاب دیدن جیغ کشیدن نداره؟ آخه بعدش از دهانه قنات جنازه کفن پیچ شده یه اختر بیرون اومد ووی، اونون چی چیکار میکرد؟ نمیدونم، فکر کنم دنبال کتاباش بود تو که میگی کفن پیچ شده بود، از کجا فهمیدی اختره؟ چون موهاش از کفنش بیرون زده بود و پاشنه پاهاش گوش نداشت. گوش نداشت؟ کنجکاف شده است. و من دلم میخواهد بگویم تو آنقدر هم که فکر میکنی زرنگ نیستی. داستانش طولانیه. داستان خوابت؟ نه. داستان پاشنهی بدون گوشت و پوست اختر. کم کم دارم میترسم. پس به من حق میدی به ترسم و جیغ بکشم. مریض بشم و تو بیمارستان بستری بشم. کاملا گیج شده است. یه جوری حرف بزن بفهمم. اینم داستانش طولانیه. دورو به خدا نگو که تو تو جا به جنازه اون دوتا نقش داشتی؟ داشتم. راست می نشیند و در چشمایم خیره می شود. غیر ممکنه. چرا؟ ممکنه. تاوانشم دادم و دیدی که هنوزم دارم میدم. وای خدای من. سرش را با دو دست میگیرد و به پشتی تکیه میدهد. برای لحظاتی سکوت میکنم. منتظر سوالی هستم که میدانم او و همکارانش ماها و شاید چند سالی برای یافتن پاسخش تلاش کردند. جنازه ها رو کجا بردیم؟ نگو که تو چاهای های قنات انداختیم؟ نه توی باغ خانم سلطان دوباره دفن کردیم خانم سلطان امهی اختر الله اکبر همه فکر میکردند جنازه ها رو بردن تهران چرا تهران میخندد خندش عصبی است ها اینطوری بود تازه طلبکارم بودن پدرشون میگفت جنازه بچه هم بردن انداختن تو بیابونت تو خوراکه. بگ؟ اللبک؟ آره، پارچه آب را برمیدارد و سر میکشد. نگاهش را از من میدوزدد. تو با کی این کارو کردی؟ با مادرم. یعنی هم رزمای اونا... چرا بودن؟ ولی جو سرود و شعر خوندن کاری نکردن. مدت طولنی دستهایش را دو طرف چارچوب در می و پشت به من می استد. بعد در را باز می و بیرون می رود. در را که باز می کنم ابد دو قرص صورت زنانه روبرویم نمایان می شود و بعد صورت های جوانی که هیچ کدام را نمی ذهنم فریاد می زند روحامی؟ روحامی مرده؟ روحامی کشته شده؟ روحامی ترور شده؟ روحامی در درگیری با اشرار با قاچاخ برق برقه اصله یه جوانی که به ماشین تکیه داده ذهنم را پریشان می کند چه خبر شده؟ خانیم محمدجانی ما حکم بازرسی منزل شما رو داریم. بازرسی منزل ما؟ زنها منتظر نمی مانند و از کنارم رد می شوند. چهره هنیف یک لحظه در ذهنم نقش می بنده. فریاد می زنم. بچم! و می دوهم. هنیف وسط حال خوابیده است. قبل از آنکه که وارد شوند او را از زمین بلند می کنم. وقتی او را به سینه می فشارم احساس آرامش می کنم. مردی با اسلحه روی سکوی جلوی ساختمان قدم میزند نمیدانم چند نفر وارد خانه شدند اما صدای ریخت و پاش را از همه جای خانه میشنوم تا این لحظه جز به هنیف به هیچ چیز فکر نکردم چی شده؟ دنبال چی میگردن؟ روحامی کجاست؟ چطور جرعت کردن؟ چرا حکمشون رو ندیدم؟ روحامی چه کار کرده؟ چرا سردرکون بود؟ چرا به سوالم جواب درست نمیداد؟ چرا از من می چرا این سه ماه این همه مأموریت رفت؟ نکنه آلیده شده؟ نکنه با قاچاقچیا، نکنه معتاد شده؟ چرا سیگار میکشید؟ چرا کمکش نکردم؟ چرا این سه فراموشش کردم؟ هنیف گریه می کند. او را روی شانه هم و با دست به پشتش میزنم؟ در اتاق کتابخانه خانه دو جوان ریزندام یکی یکی کتاب ها را برمیدارند دارند برق می زنند بعد سر جایشان می عکس شریعتی روی زمین افتاده خم می تا عکس شریعتی را بردارم می ترسم زیر پایشان برود دست نزنیم لحن محکم و پرقدرت است عکس را رها می کنم به دیرون یعنی چی آقا؟ اینجا خونه ی منه؟ بفرمایید بیرون سردرگمم میلی به بگو مگو ندارم به اتاق خواب میروم تمام رخت خواب ها در هم و بر هم روی هم تلمبار بار شدند یکی از خانم های کیکی لباس های حنیف را از کمد بیرون میآورد تکان میدهد و روی زمین میگذارد در چمدان لباس باز است نامه های ملیه نامه سعید داستان کوتاه سعید ماهی سیاه کچولو ارس و میراسم هم. همانها که وقت درد زای من تکلیفشان رو با روحامی روشن کرده بودم نامه های ملیه باید به خودش داده میشد، نامه ی سعید باید پاره می شد. اما داستانش رو باید نگه می‌داشت و چاپ می کرد. ماهی سیاه کوچولو مال مونا بود با دو سکه شاهپاسی مادرم یا حسین یا ست مرتزا یا پیریه که بفرماییم بیرون چی شده آخه؟ صدایم از قاعده چاه می آید باید جایی بنشینم احساس می کنم هنیف از دستایم می زد بفرمایید بیرون توی حال روبروی تلویزیون می نشینم بلوزم را باز میکنم کنم چادرم رو روی سرم می کشم و ناکه سینم رو در دهان حنیف می گذارم محکم به سینم مک میزند زند از سینم به همه بدنم پخش می شود این مرد کجاست؟ خدا یا برسنش صده ی سود زدن مردی را که روی سکوی جلوی خانه نگهبانی میدهد میشنم من یا رو خامی یا هر تو سؤال در ذهنم میپیچد انگار سوال با ذهنم کشتی گرفته در هم پیچیدن ذهن و سؤال را حس میکنم جوانی از آشپزخانه بیرون میآید چراش آشناست یک لحظه احساس شادمانی میکنم چی شده؟ تو رو خدا یه چیزی بگین؟ جواب نمیدهد و وارد کتابخانه میشود صدای خنده آرام آنها را میشنم هنیف زیر سینه خوابیده است نکی سینه را از دهانش بیرون میآورم و دکمه های بلوزم را میبندم چادرم را تا روی ابروهایم پیش میکشم منتظر میمانم نباید خودم را کوچک کنم نباید بدرزم روحامی نفوز دارد من که کاری نکردم روحامیم که زنها از اتاق بیرون میآید پلاستیک اره میرسن دست یکیشان است وارد اتاق کتابخانه میشوند. آرام با هم صحبت میکنند. نامه های است هست به من چه اختر مرده من اون وقت شون سال داشتم سعید گم و گور شده من نمیدانم کجاست قرار بود با همه ازدواج کنیم فقط یک نامه عاشقان است. داستان که مدرک نیست. خانم محمد شما باید با ما بیاید سریع از جایم بلند می شود. چرا؟ معلوم میشه من بچه کوچیک دارم. خود حاجی میاد بحث نکنید خانم محمدجانی راه بیفتید. هنیف را محکم گرفتم. چادرم اقب رفته و نزدیک از سر شانه هایم پایین بیفتد. پس بذاریم بچه آماده کنم. خودتون آماده شین یکی زنها هنیف را از بقنم میگیرد. روی کپه ی لباسهای هنیف خم میشوم نمیدانم چه لباسی بردارم. احساس میکنم ذهنم کار نمی کنه. لباسها را به هم میریزم. دنبال لباس گرم میگردم. جاکت آبی رنگش را برمیدارم. هرچی جستجون میکنم کاپشنش را پیدا نمی کنم. مستحص. قبل از این که بچه را بگیرم زن میگوید بچه را نمیبریم خودتون آماده بشین یعنی چی؟ پس بچه را چی کار کنیم؟ زنی که هنیف را گرفته میگوید ما خودمون نگهش میداریم ولی من بدون اون هیچ نمیام زن زن بازویم را میگیرد لباس های هنیف را از دستم میکشد و پرت میکند گوشه ی حال راه بیافتید بازویم را از دستش خلاص می و به طرف زن و حنیف یورش میبرم. اون فقط سه ماهشه. غیر از شیر خودم هیچی نمیخوره. زن دوباره بازویم را می و به طرف در میکشد. دو نفر جوانی که کتابخانه رو جسجو می کردن پشت سرم میستند. زن و هنیف از جلو چشمم ناپدید می شود. جیغ گات جیر میکشن. کاری که مدت هاست نگردم. من نمیام؟ تا حاجین ایاد از اینجا تکون نمی خورم ویلم چنگال زنده بازویم فرو می رفد برقسله یه جوانی که جلوی خانه نگهبانی می دهد چشمم را می زند در تا بازوهای هر درستم کشیده شده. سنگینی یک کوه را روی سینه احساس میکنم کمترین تماسی با سینه هایم فریادم را بلند میکنند سینه سفت و سخت شده هست. دیگر از آنها شیرچکه نمیکنند صدای حبیبه را میشنفم چرا یکی به فریاد این بدبخت نمیرسه؟ پس شوهر نامردش کجاست؟ صدای معصومه را میشنفم خودیتو خسته نکن اگه قرار بود برسن این چار روزه رسیده بودن بوی پتوهای کانه آزارم میدهد گوشهٔ پتو را کنار میزنم سرما هجوم میآورد با صدایی لرزان میگویم سردمه حبیب گوشهٔ پتو را درست میکند اقبال، دیگه پتو نداریم هر ستاره انداختیم رود تبه استخانهایم درد میکنند درم میخواهد بر روی سینه هم بخوابم و داوود روی پشتم راه برود کاری که همیشه مادرم میکرد حبیبه دوباره به در میکوبد صدا توی زرم میپیجد آقا برادر لاغت دوتا هم به تبر به این بدبخت بدی داره میمیره کسی جواب نمیدهد حبیبه همچنان به در میکوب دنم میخواهد بگویم بس کن اما نمیتوانم خواب تا پشت بلکم میآید پس چرا از اول نگفتی خون خراب مصومه میگوید قوت خودم لاکردار کردار. معلوم تا که اینجا باشم حبیبه میگوید سواب داره جوونه صدای ریختن آب را لیوان میشه حبیب آهسته گوشه یه پتو را بالم می گیرد. پاشو! پاشو که دوایی دردت رسید! معصومه کمکم می کند. می نشیند. حبیبه مشتش را باز می کند. چیزی نمی بیند. یه ذرا تلخیه. به اندازه یه عدس. دردت رو تسکین میده. دهنم را باز می کند. با دو انگشت به کوچک تریاک را در دهانم میگذارد معصوم لیوان آب را به دهانم نزدیک میکند قورتش بده نترس تریاک را قورت می دهم. با این همه ترخیان را روی زبانم حس میکنم دراز میکشم و بتوها را روی سرم میکشم هر دو نفر دو دوطرفم مینشین شوهر خوهرم گورانیه. پسرم از همون طرف زن گرفته. حقیقتش او طرف خیلی اومد و رفت میکنیم. اسم شوهرش به گوشم آشناست. خیلی جوونه. بشش نمیاد شوهرش حاجی باشه. چرا همش به اینا میگه من زن حاج آقا روحامی هستم؟ به نظرم شوهرش از او کلده گنده است. میخوام صد سال سیا نباشه. ناموسش ایجا؟ خواب میبینم، کنار رودخانه گوران فرش میشوریم، چند نفریم، انگار همه دخترهای شمسابات هستند، خانم سلطان زیر درخت گردو نشسته و قلیان میکشد، مادرم بال چار را باز میکند و چیزی به خانم سلطان میدهد، بعد خم میشود و زغالهای سر قلیان خانم سلطان را فوت میکند، سرخی زغالها نمایان میشود مادرم برمیگردد و غالی نقش کشمیری را وسط باریکه آبی که از رودخانه جدا شده میکشد. آب از روی بوتهایی کشمیر سرازیر می شود. آب شدید و شدیدتر میشود. فرش برکت تن میآید. گوشه فرش را می گیرم. مادرم فریاد میزند. رودخانه رودخونه کنده! رودخونه کنده! فرش با آب می رود. و من هم با فرش میروم نمیدانم مادرم کی از آب بیرون رفته کی از کنار رودخانه فریاد میزند رودخونه کنده رودخونه کنده پتوها را کنار میزنم احساس خفقان میکنم بدنم خیس عرق است هنوز حبیبه و معصومه دو طرفم نشستند دهنم تلخ و خشکست آب هر دو کمک میکنن بنشینم. حبیبه عرق پیشانیم را پاک می عرق خ کردی دیایی شالا خوب میشی. لیوان آب را از محصومه می آب را سر می بهتری سرم را تکان میدم. حبیبه میگوید خدا رو شکر در باز می با یک مرد میانصال وارد می حبیبه و معصومه از جا بلند میشوند. زن کنارم می نشیند. قرص صورتش پیداست. تو مریضی؟ حبیبه میگوید. ها وله. بچه شیر میداده. شیر تو سیناش جمع شده. حالا زن نمی نمیگذارد حبیبه حرفش را تمام کند. دستم را می گیرد. انگار نبزم را گرفته است. مدت طولانی سکوت می کند. بعد بدون اینکه به مرد نگاه کند میگوید. تب داره. مرد میگوید. بچه چند می ماه است میگویم. سه ماهه. مرد میگوید. چهار روز. معصومه میگوید. آقای دکتر تب و لرز داره. زن از کنارم بلند میشود. مرد جلوتر میآید و به دقت به صورتم نگاه می کند. ناگهان مرد را می شنزن. همان دکتری است که بینیم را معاینه کرد. یک آن فکری به ذهنم می رسد. آقای دکتر منو به خاطر میارین؟ رویش را برمیگرداند. من خانم مهندس روحامی هستم. بدون اینکه چیزی بگوید از در بیرون میرود. زن می تا دکتر از در خارج شود. بعد میگوید این اینقدر کلی بازی در نیارین. برای دارو میفرستم. بخش اول جملهاش خطا به حبیب او محسوم است زن که از در خارج می میشود حبیب آهسته میگوید کلی جد و آبادو